لم ولم تسر السيف خدلانا ولم جبين إصغاء لم ولم تسر السيف ولم بسم الله الرحمن الرحيم تمام حمد و صنا و صفات به خداوندی یکتا و به همتا. درود و صلوات فراوان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. مهاجر و مجاهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکت به برنامه امروزی ما خوش آمدید. خداوند زل را سپاس گذاریم که به ما فرصت داد تا یکبار دیگر از طریق رادیوی صدای جند الله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم. امروز جمعه تاریخ 26 جمادی دستانی مطابق 8 دیمه حرکت اسلامی اوزبکستان رادیوی صدای جندالله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه می دهد خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشد و همچنان امیدواریم که داشته های برنامه امروزی ما مورد پسند شما قرار بگیرد سخن و درازا می کشانیم می به طرف داشته های برنامه در برنامه امروزی سلسله اناندس ها مصاحبه با برادران مجاهد و همینطور در بخش تحولات هفته شما را از گزارشات داقی هفته با خبر میسازیم باجمد الله باشید ها. در مورد نصیحت ناپذیری می‌فرمایند آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به سیقل زنگ، با سیه دل چی سود گفتن وعظ، نرود میخی آهنی در سنگ. سعادت مندی به مشیت الهی است، بخت و دولت به کاردانی نیست، جز به تایید آسمانی نیست، کمیاغر به غصه برد رنج، ابله اندر خرابه یافت گنج، هنر در شاد نمودن دل است به دست آوردن دنیا هنر نیست یکی را توانی دل به دستار جاهل و به درک ندارند پیاز آمد آن به جمله پوست که پین داشت چون پیسته مغزی درست. شکم پرست مباش تنوری نوری شکم دم بدم تافتن مصیبت بود روزی نیافتن آدم نیست آن کسی که در بند غمی دیگران نیست تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید کنات نهند آدمی. ظلم بر ستمگر عین عدالت است. جفا پیشگان را بده سر بباد، ستم بر ستم پیش عدل است و داد شرافت مندانه زندگی کن. چنان زی که ذکرت تحسین کنند، چو مردی نبرگور نفرین کنند. کمخوری راحتی است، چو کمخوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیش شاید سهل گیرد وگر تن پرورست اندر فراخی چو تنگی بیند از سختی بیمیرد خوب شنوندگان عزیز این بود اندرزه های امروزی خدا کند که مورد پسند شما قرار گرفته باشد فی اعلا اعالیها رباه رباه ذابت مهجتی شوقا الیل جنان فبلغها امانیها سلسلی مصاحبه ها شنموندگان عزیز در بخش مصاحبه ها خوش آمدید در این هفته را دیوی صدای جند الله ای را انجام داده با چند برادر مجاهد شما را زیاد منتظر نمی گذاریم می رویم به سوی برادران خود برادر محترم السلام و عليكم برنامه ما خوش آمدهد بسم الله الرحمن الرحيم اسم ما خالد است خطبان تبارك وتعالى در اي بلا كيف خيش مهرباني میکند انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا الآية خطبان تبارك وتعالى میفرماید این آية در باره مسئولیت جوان جوان چی مسئولیت در, در خيش؟ در مقابله اسلام با خاطر خدمت در اسلام جوان چه مسئولیتی دارد این بیان میکنین این آیه تبارک و تعالی ناظر شده است خداوند تبارک و تعالی همه ها را به خاطر عبادت و بندگی خش آفریده است که چنین مهربانی میکند و مخلوق الجن و الانسان الا و همچنان این دمان کفایت نمی کند که ما بگویم لا الله محمد الرسول الله و همچنان پیام های خداوند است که میفرماید ان تروخففوا المثقال و, و همچنان آیه دیگری و فی سبیل الله و همچنان قتلوا حیث حيث وجدتموهم و دیگر آیت های دیگری هم است که باید جوان در مقابل این آیت های خداوند مطی و لبیک بوده باشد و همچنان باید جوانان از این خوف نکند واز ملامت كننده ملامت كنندگان نترسد ما بعد در مقابل خدمت به دین در مقابل خدمت به اسلام و به مقابل خدمت به دین و قران بعد ما از هیچ کس خوف نداشته باشیم تنها ما از خداوند تبارک جوانی را از اصحاب کرام رضی الله و انهم بدانیم ما بفهمیم همچنان حضرت عمر فارق، حضرت خالد حضرت علی رضی الله عنهم و همچنان حضرت حمزه و دیگر اصحاب کرام بودند که جوانی خود را در اسلام تری کردن و بالاخره جوانی خود را در اسلام صرف کردن و جامع شهادت را نوشدن که چنان که حضرت حضرت حمزه کاکای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که در جنگ احاد شهید شد تکت تکه و پارچه پارچه شد باید ما از آنها جوانی را بشناسیم و بفهمیم و درک بکنیم جوان مسئولیت جوان چی است در زمان خلافت هارون رشید هارون رشید وقت که خلافت و... وسط و فراخی اسلام را بیان میکرد به عبرها ختام میکرد می‌گفت هر جایی که ببارد حد من عشر و خر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 کار بکنیم و چه عمل را انجام بدهیم تا این که ما کشور خود را از دست انکفار خلاص بسازیم پس باید به با همه مسلمان ها و خصوص به جوانان و جوانان مسلمان افغانستان این حد و ضروری است که که مسئولیت خود را بداند و بفهمد و مسئولیت خود را انجام بدهد و بکشد تا آخرین رمق حیات خود که این دشمنان اسلام را که این یهود و نصار آسد چه های خلاف در اسلام در افغانستان می کند به جوانان چقدر کارهای خلاف را می و همچنان به دیگر با مادرها و با خوهارانی مسلمان ها چه های خلاف اسلام را انجام می داد باید جوان مسئولیت خود را بداند و بفهمد این کارها را معنی شود تا با غفلت سبب غفلت من شما بود که جهان کفر برای ما تسلط یافته است پس ما بدانیم و بفهمیم که اسلام چه هست وأن أجمعنا في الإسلام فلحاظ لأنجمات يمكن أن أكون المسؤولات في الإسلام وأن أجمعنا في الإسلام مسمي أمض العزيز محمد وعن أصلا على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنوا منهم إن الله لا يهد القوم الظالمين صدق الله العظیم و صدق رسوله النبيل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ما مجاهدين خصا غرض ما دو مقصد اول نکته ما در راک غرض ما است باید ما نيات اخلاص خود بسازیم در راه جهاد ما در بر آمدیم با ایشو گفت ما دیدیم در افغانستان خصوصا ما رفتیم دیدیم ظلمای که امریکایا در سر برادرای ما در سر خواهرای ما مرد میکنه خصوصا فسادای که در افغانستان است ما دیدیم بسیار متاثر شدیم از مجاهدین و مسلمانان ja علما و طلبه ایستکین باید ما و شما نیرو را تعقیب کنیم و در سطح جهان که استن قرآن Daud mazluma, Berashi mazluma, arazdast zaluma, vahrihaa konim, ei garazmo mardmusta. Baid kastmo hattel, inkon kuish konim, kiiri budushmanra, ma, ba khud nagirim, wa tadbur konim, tafakur konim, ki aqianam, wa muislam yakciztaki, jihad yak, yakciztkeem, tamam mihwar, tamam miayyar, hamu umur dar Jihadasta, asta, wa kamyabihaa dar jihad asta, dar digadjist kastda, kamyabi nesta, ma didim. Moi, moi meidän ylemmäkään, voimme tehdä kirjoitusta, mutta meidän on tehtävä se, että meidän on tehtävä se, että meidän on tehtävä se, että meidän on tehtävä se, että meidän on tehtävä مابساط المجاهدين في وندا والا الا طيام مستقيم اول كاست ما اينارا مزبن ميبرم دوم كاست كافرای خارجی اونا كاست به با كاست در يک جنب را بعد از با و بسیار قادر اذا اكرست نيت سفانه باش ومكاميابي بصير مشكله استا دنجخ مخ مرسان الله في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير <تصفيق> الآن برادران محترم ومجاهدين معزز ومكرم السلام عليكم و ورحمة الله وبركاته و بعدا من ميخواهم كي آيتي تلوت شدرا در حضور شما عزيزان ترجمك نبوين محترم مجاهدين الله تبارك وتعالى ما و شما در انجا جمع کرده است و ما و شما در انجا جمع شده بخاطر اداي یک فریزه به خاطر ادا کردن یک فریزه او فریزه عبارت از جهاد است چنانچه بر بربلای انسان ها نماز فرض است زکات فرض است حج فرض است همچنان جهاد هم برای مسلمان ها فرض است محترم مجاهدین جهاد بسیار فضیلت دارد جهاد بر بالای نماز هم فضیلت دارد بر بالای حج فضیلت دارد بر بالای دیگر عبادت هم بسیار فضیلت زیاد دارد از هم خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که جنگ خندک شروع شد پیغمبر صلی الله علیه و سلام به خاطر جهاد چه نماز را قضا کرد از هم معلوم شد که جهاد عز نمازها مزيد فازلت درد الله تبارك وتعالى قرآن در قرآن الكريم مفرما يت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأوهم جهنم وبئس المصير خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن خطاب صرف براي فاغمر صلى الله عليه وسلم نس بلك خطاب براي أمة فاغمر صلى الله عليه وسلم نس. الله تبارك وتعالى درن آية مباركة ما فر ما يد يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير أي نبي أي أمة نبي يجاهد الكفار شما جهادكونيد بهم كفار بهم رأي, راي كفار مقاتلكونيد جهادكونيد ومبارزكونيد وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم شما كفار به همرای منافقین به همراهی یهود نصارا چی کنید جهاد کنید و به همراه آنها سختی کنید و مأواهم جهنم و بیس المسیر و جای آنها جهنم است و جهنم بسیار جای بسیار بد مر است. از امین آیات معلوم شد که جهاد برای تمام مسلمان ها جهاد فرض است وقتی که کفار بر مسلمان ها حجوم بیارد و تن مسلمانها قبض بکنند بنام مسلمانها تجاوز بکنند آه و تن قبض بکنند بر تمام مسلمان جهاد فرض عین میگردد امروز برای تمام مسلمانها برای تمام مسلمان جهان جهاد فرض عین است چرا که تمام دنیا تمام دوالتها در قبض ایش کفر است برای تمام مسلمان های دوالت جهاد چستا فرض Musulman Ha, بایس مسلمان ها بهدار شود کفر برای مسلمان ها چه قدر ظلم میکند با نام مسلمانه تجاوز میکند بدامن مسلمان ظلم میکنند باید مسلمان ها بیدار شود بربرای مسلمان ها جهاد فرض عین شده مقابل کفار منافقین جهاد بکنند این جهاد صرف برای در سابق هم بعد از اینم برای مسلمان ها جهاد فرضاین است فقامبر صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید الجهاد و مازن اله یوم جهاد همیشه است جهاد تا روز قیامت است هر وقتی که جهاد است دین و اسلام است هر وقتی که جهاد ختم شد دین و اسلام هم چی می شود ختم میشه برادران عزیز امروز مسلمان ها را میبینید چقدر زلت است خار ذلیل است در طابداری کفار است دا. اٹھات کفار میکنات غلامی کفار میکنات بدون اجازه کفار هیچ کار کردنمیتند همیشه کافر بربالای مسلمانها مسلط هستند بخاطر چی ازی خاطر کہ انہا جہاد را ترک کردن جہاد نکردند جہاد را ترک کردن اللہ تبارک و تعالی با مقابله باید مسلمان ها بخیزند و جهاد بکنند و خود را غالب بسارند بر بلای کافر در این لحظات یک برادر ما میخواهد به حضور شما یک ترانه را به خانش بگیرد بیاید که بیش سنگرم را پیامی جهانی است خنجرام را دمی آسمانی است سنجرام را پیامی جهانی است خنجرام را دمی است میرام تا کی میرم در این راه مردنم زنده است است. می روم تا که میرم در این راه مردانم زندگی جویدنیست، ای مجهاد، ای مجهاد، ای مجهاد، ای مجهاد ای مجهاد ای مجاهید، ای مجاهید سنگرم را پیامی جهانیس، خانجرم را دمی آسمانیس، سانگارم را پیامی جهانیس، خنجرم را دمی آسمانیس سنگرم را پیامی جهانیس خنجرم را دمی آسمانیس هر سیتام گر ز جو شش نشونیم هر جف و کش با کو مش راسونیم هر سیتام گر ز جو شش نشونیم هر جف و کش با کو ای مجهاد ای مجهاد ای مجهاد ای مجهاد ای مجهاد aim joheed sangaram ra payami jahanis khanjaram ra dami sangaram ra payami jahanis khanjaram ra dami aasmani bas ma dana maut ta fi darb maulana al ali fi darb شنا عزیز این بود مساحبه امروزی ما که به خدمت شما تقدیم گردید تا مصاحبه دیگر خداوند یار و یاورتان والسلام بمواصل. اکنون نوبت به بخش اخیلی برنامه امروزی ما رسید البته در این بخش از تحولات داغی هفته شما را با خبر می سازیم افغانستان روز جمعه با تاریخ 19 جمادستانه مطابق یازده می. در اثر جاری شدن سیلاب در چندین قریه ورسوری اشکمش وریاتی تاخور یک تن کشته و 15 تن ناپدید شده و بیشتر از 60 خانه ریهایشی تخریب شده است. با تاریخ مذکور سخنگوی آیساف میگوید که روز جمعه در شرق افغانستان یک مرد حمله کننده با استفاده از لباس اردوی ملی بالای نیروهای آیساف گلولباری نموده یک تن آنان را به جهنم فرستاد. 20 جمدانی مطابقی 12 ایمه. مقامات محلی ولایتی غور در غرب افغانستان از کشته و زخمی شدن دو تن در اثر برخورد برموین کینار اجازه خبر داده اند نظر به اطلاعات این حادثه زمانی رخ داد که سراجه دن ولسوالي شهرک این ولایت به طرف دفتر کارش در حرکت بود که در این حادثه خودی و زخمی و پسرش کشته شد و بعد از این حادثه ولسوالي ولسوالي شهرک توسط هلیکوپتر در شفاخانه ولایت هرات نقل داده شد 21 جمادی و ثانی مطابق سیزده ایمه، روز یکشنبه مولوی ارسلان رحمانی، رئیس کمیته شورای عالی صلح و عضو مشران و جرگه از سوی افراد ناشناس بازار به گلوله در غرب کابل کشته شد، گفته شده که مولوی ارسلان در حال حرکت به سوی دفتر کارش بود که متری حامل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. نظر به گفته نواسه شخص مسلح با استفاده از یک تفنگه بدون صدا به قتل رسانده است. زبیح الله مجاهد با ارسال یک پیام برادی آزادی گفت که طالبان در قتل مولوی ارسلان دخیل نیستند، اما قاری حمزه شخصی که خود را سخنگوی گروه محافظی فدای معرفی میکند، مسئولیت قتل مولوی ارسلان رحمانی را به گرفته است. رحمانی یکی از فرماندهان سابق طالبان بود، بعدن در حکومت مرتد کرزه عضو ارشدی شورای صلح شد که از طرف حامد کرزه جهت مذاکره برای ختم جنگی ده ساله افغانستان تشکیل گردیده است با تاریخی مسکر مقاماتی امنیتی افغان گفتند که روز یکشنبه قرار است مناطقی که مرحله سیومی پروسه انتقال در آنها تطبیق میشوند اعلام خواهد شد. کارزی تصمیم گرفته است که مرحله سیومی پروسه انتقال از نیروهای ناتو به نیروهای افغان در 122 واحد اداری تطبیق شود. بر اساس گزارش‌ها تمامی واحد‌های اداری ولایت اورزگان، کاپیسا و پروان تحت پوشش مرحله سیومی انتقال خواهد بود. در اعلامیه گفته شده است با تطبیق این مساله 75 درصد نفوذ افغانستان تحت پوشش برنامه انتقال قرار می گیرند. با تاریخ مذکور، صداها تن ساکنان ولسوالی خواجه بهادینی ولایت تخار دست به تظاهرات زدند. نظر به گفته رسانه های کفریا علت این تظاهرات ناامنی، فساد اداری و عدم بازسازی مناطقشان می باشد که به با گفته آنها دولت به آن توجهی ندارد. با تاریخ مذکور، مقامات محلی ولایت ننگرهار گویند که شب یک شنبه در منطقه سالنگپور ولسوالی خوگیانی 6 تن از مأیم پاکان از ناشناس شده اند. با تاریخ مذکور مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند که یک تابع ایرانی با 20 کیلوگرم که سوی نیروهای پلیس بازداشت شده است بستدوی جمادستانی جمعاتی سانی مطابق مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگن که در اتجه انفجار یک ماین در بلوسوری برمج این بلایت هفتن به بخشمولی امانلوش عابزای یک از شورای ولایت فاریاب کشته شدن. کماندان امنیتی ولایت فاریاب در یک از رسانه های کپر گفت که در این رویداد هشتان دیگر زخمی شدن. وای همچنان افزود که این ماین در رقبی یک دوکان ادویه فروشی جابجا شده بود که با وسیله موتکنترول انفجار داده شد. با تاریخ مذکور جسد مولوی ارسلان رحمانی عضو شورای عالی صلح افغانستان که در روز یکشنبه کشته شده بود روز دوشنبه در کابل دفن گردید 22 جمادی الثانی مطابق 14 ایمه. مسئولان ویلایت هلمند گفتند که در نتیجه دو درگیری میانی مجاهدین و نیروهای افغان در ولسوالی نوزر و موساقله این ویلاयत 15 تن از مجاهدین به شمول یک فرمانده به شهادت رسیدند. گزارشی از ویلایت هلمند به نشر رسیده است که درگیری اول در ولسوالی موساقله این ویلاयत رخ داد که در نتیجه آن 14 تن از مجاهدین به شهادت رسیدند و درگیری دوم در ولسوالی نوزر رخ داد که در نتیجه آن یک تن از مسئولین مجاهدین به شهادت رسید. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در این درگیری یک سرباز ارتش ملی و یک سرباز پلیس کشته و یک پلیس دیگر زخم برداشته است. 23 جمادی مطابق 15 وزیر معادین و صنایع افغانستان بر روز سه‌شنبه اولین قرارداد انجام تحقیقات که ساحت نفت‌خیز اندخوی آقینه را که مساحت مجموعی آن به 235 کیلومتر مربع می‌رسید، بمذوری تعیین و معلوم کردن های زخایر نقدی به یک کمپانی کانادایی به نامی تیراسیز امضا کرد که مصاريف مجموعی آن به 6.5 میلیون دلار آمریکایی بالغ می‌گردد. 25 جمادی الثانی مطابق هفته می 14 تن از برادران استشهادی در مقام ویرایتی ولایتی ولایت فراو هجوم در مرحله اول یکی از فدایان با انفجار دادن مواد انفجاری حمله نموده متواقی برادران با جنگ مسلحانه پرداختند که در نتیجه این حمله استشهادی 7 تن کشته و 14 تن دیگر زخم برداشتند گفته می شود که در میان کشته شدگان 6 تن محافظ والی و در میان زخمی شدگان 6 عسكري پلیس شامل میباشند هدف این حملات والی ویراتی فراو بوده اما متاسفانه در صحنه حضور نداشت نیپال 22 جموادی سانی مطابق 14 می مقامات نیپالی میگویند که در نتیجه سقوط یک تییاره در شمال هیمالیا ششتن تن زنده ماندن. این تیاره با 21 سرنشین با وقت صبح روز دوشنبه هنگام نشست در یک منطقه کوهستانی هیمالیا سقوط نمود که 15 تن در این رویداد کشته و 6 تن دیگر نجات یافتند خبرنگاری رویترز به نقل از یک پلیس گزارش داده که دو پیلوت و یک مهمان تییاره نیپالی بوده مطابق 16 هندی و دو غربی در این تییاره سفر میکردند روسیه بستیاک جمعدسان مطابق 13 می مقامات روسی گفتند که سه شاگرد روسی در روز یک شنبه در نتیجه یک حادثه ترافیکی هلاک شدند گزارش‌ها می‌رسانند که حادثه زمانی رخ که موتر سرویزی پر از شاگردان مکتب در منطقه استقراپول از جاده منحرف شد یمن بست جماع دستانی مطابق دوازده می، در نتیجه بمباردمان تایاره های بدون سرنشین آمریکایی در یمن بستو پنج تن از مجاهدین به شهادت رسیده ان. بر اساس گزارش ها ده تن از مجاهدین در منطقه معریف و شیبه در جنوب شرق یمن به شهادت رسیده و پانزه تن دیگر در جنوب ابیان به شهادت رسیده ان. 22 بستو دوی جماع مطابق چهارده می، کو یمنی روزی دوشم بعد در جنوب یمن 16 تن از مجاهدین را به شهادت رسانیدند حمله اول در 70 کیلومتری مرکزی یمن در زنجبار صورت گرفت که در نتیجه ده تن از مجاهدین به شهادت رسیدند و حمله دوم در یک موتری که مجاهدین سوار بودن در حمای شهر لیوا دو راکت شلیک شد که در نتیجه 6 تن دیگر از مجاهدین به شهادت نایل گشتند بستویکی جمادی و سانی متابقی سیزده عربستان سعودی به وزارت معارف افغانستان چهار میلیون ریال سعودی کمک کرده است. دکتر فاروق وزیر معارف افغانستان روز یکشنبه در کابل حین امضای قرار دادی به سفیر عربستان سعودی گفت که این پول در بخش تقویت علوم اسلامی و زبان عربی به مصرف خواهد رسید. تاجکستان 21 جومادی الثانی مطابق 13 می یک زلزله در روز یکشنبه برخی از منطقه تاجیکستان را تکان داد بر اساس معلومات اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا این تکان در مقیاسی 5.7 درجه بوده به حدودی 100 کیلومتری شهر کولاب تخمین شده است پاکستان 12 جمادی الثانی مطابق 11 می روز جمعه مقامات پاکستانی میگویند که مقدار زیاد مواد مخدر را به دست آوردند و گفته مقامات پاکستانی که 125 کیلوگرم مواد هروئین را که در یک کانتینر جابجا شده بود از بندر کراچی کشف کردند و ارزش این مقدار مواد هروئین در بازار جهانی در حدود 14 میلیون دلار تخمین شده است بر اساس گزارش‌های این مواد از طریق افغانستان به ایالات خیبر و از آنجا به کراچی و سپس به اندونزی انتقال داده می‌شد گفته می‌شود از جمله جمعیت 108 میلیون نفری پاکستان در حدود 4 میلیون تنی آنان به مواد مخدر معتادند با تاریخی مذکور مالک دلورخان از طرف دو از زفرادی مسلح ناشناس که سوار بر یک موتر سیکل بودن بعد از زدای نماز شام در نزدیکی منزلش کشته شد ملک دلورخان که دو مرمی بر پیشانیش اصابت کرده بود قبلت رسیدن به شفاخانه جان داد وی قبل از یک سال نیز از طرف مردان مسلح خطف شده بعد از سپری نمودن یک بار رها شده بود بیستی جمادی و مطابق 12 می مقامات پاکستانی می گویند که در اثر انفجار ماین کناری جاده یک افسری پلیس کشته و دوازده فرد ملکی با شمول پنج پلیس زخمی شدند و گفته مقامات افسران پلیس سه یا چهار زندانی را به مترهای مخصوص زندان انتقال می که به ماین کناری جاده برابر گردیدن 21 جماع دیستانی متابق 13 مایی، مقامات امنیتی پاکستانی می گویند که در نتیجه انفجار یک ماینی تعبیر شده در کنار جاده در غرب پشار یک افسر پولیت کشته و چندین نفر دیگر مجروح گردیدن این بم گمان نروید که حدود 5 تا 6 کلو گرم مواد منفجیره ظاهرن در نزدیکی پوسته پولیس تعبیر شده بود پوسته پولیس در جریان حمله از بین رفته است 22 جماع دیستانی متابق 14 مایی پولیس پاکستان میگوید که روز دوشنبه در نتیجه انفجار یک ماین دو افسر پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند که این انفجار در شهر کویته ایالات صوبہ بلوچستان بالای یک کاروان نظامی صورت گرفت. بیستجار جمعه لسانی مطابق 16 می دو هلیکوپتر نظامی پاکستان روز چهارشنبه در نزدیکی اسلام آباد در هوا تصادم کرد که در نتیجه هلیکوپترهای مذکور به زمین افتید. در این حادثه 4 پیلوت کشته و تعداد از مردم ملکی زخم برداشتند. قرار است با تاریخ یک کنفرانس جیهانی در شیکاگو به وقوع پیوندد البته گفته شده است اشتراک کشور پاکستان در این کنفرانس به امنیت منطقه تأثیر گذار خواهد بود معلوم است که بعد از کشته شدن 28 عسکری پاکستانی از سوی نیروهای آمریکایی در سرحدات آن کشور ارتباطات بین این دو کشور تیره‌تر شده است به همین علت پاکستان راههای عبور کاروان نیروهای ناتورا را از خاک پاکستان به افغانستان من نموده است در همین حال آصفعلی زردادی گفته است در صورتی که آمریکا از مطالب عفو نماید ما راه را برایشان باز خواهیم کرد ولی کن تاکنون آمریکا از پاکستان طلب عفو نموده است سوریه 18 جمادی الثانی مطابق دیمه. دو انفجار بزرگ در شهر دمشق رخ داد. در این انفجارات مخالفین حکومت دو مرکز حکومت را مورد هدف قرار دادند. نظر به گفته‌های مردم این کشور، صدای انفجار چنان شدید بود که همه شهر را فرا گرفت. در این انفجار بیش از 55 تن کشته و تقریباً 300 تن زخمی برداشتند. یکی از این مراکز دفتر مبارزه با تروریسم و دومی مرکز اطلاعات بود. البته گفته می‌شود که این بزرگترین انفجار بود که از شروع جنگ تا در آن کشور رخ داده است. 23 جمادی الثانی مطابق 12 می نظر به خبرها شب شنبه در شمال سوریه انفجار رخ داده است که هدف از انفجار یک بنای دولتی بوده که در آن تلفات رخ نداده اما در برخورد مسلحانه بعد از انفجار یک محافظ دولتی کشته شده است با تاریخ مذکور 24 اردیبهشتی که از طرف ایالات متحده آمریکا بر سوریه کمک شده بود روز شنبه به حکومت سوریه تسلیم گردید 21 جمادی الثانی مطابق 13 ای. شاهدان میگویند که در نتیجه تصادمات در لبنان بین گروههای مهاجرین و طرفدار حکومت سوریه یک تن کشته شده است. در عین حال در خشونت‌های اخیر در سوریه حداقل پنج نفر کشته شدند. بیست و دوی جمادی سالی مطابق چهار دی فعالین سوریا میگویند که مهاجرین بیستی اسکاری سوریا را در جنگها در منطقه حمص از بین بردند. گزارش‌های سانان که این در گریز روز دوشنبه در نواحی شهری روستان رخ داد که در بیست و کیلومتری شهر حمص قرار دارد آنها میگویند که. در جریانی نابارتو چند نفر زخمی و چند وسیله نقلی ارتش تخریب شده است. مکزیکو، بسته‌یک جمادی مطابق سه‌دهم‌ای. حتی اقاسی و هفت جسد که در خارطه های بزرگ پلاستیکی پوشانده شده بودند روز یکشنبه در شهر مونتری در شمال مکزیک یافت شدند و گفته پلیس افراد در کنار سرک انداخته شده بودند که چندین اجساد یافت شده پارچه پارچه شده بودند در یافت این اجساد باعث شد که پلیس مکزیکو روز یکشنبه شهرهای مونتری و شهرهای رینونسرا را مسدود کند و هدف از کشته شدن این افراد دادن هشدار به خاطر ایجاد ترس بین گروه های رقیب و قافیا مواد مخدران یونان بست یک جماعت مطابق سیزده ایمه، رئیس جمهور یونان بروز یک شنبه جهت تشکیل یک حکومت جدید اطلافی باسه حزب عامل کشور ملاقات کرد وی با احزاب دموکراسی جدید حزب رادیکال آزاد سریزه و حزب سوسیالیست پسونگ ملاقات نمود. ترکیه، بست یک جماعت مطابق سیزده ایمه، خاورنگاران ترکی که از ماه مارچ تا به حال در سوریا زندانی بودند پس از وساطت ایران از قید رها شده و به ترکیه برگشتند آنها در اوایل ماه مارچ پس از آن ناپدید شدند که برای گزارشی از برخوردها میان نیروهای وفادار به بشار الاسد و مخالفان رژیم در ولایت ادلی بوارد سوریا شده بودند عراق 21 جمادی الثانی مطابق 13 چندین انفجار پی هم روز یکشنبه در نقاط مختلف عراق رخ داد که در آنها 5 گشته شدند اهداف این اینفجارها نیروهای امنیتی عراق بودند مقامات امنیتی عراق گفتند که این انفجارها در فلوجه بغداد و دیاله رخ داده اند چین بیست جمادی و مطابق دوازده می چین در یک خبر از بروز طوفان توام باباران های مسلسل و جاله هایی که مساوی با بزرگی توبه های گاز بوده گزارش داده است که در اثر این طوفان چهل تن کشته و نزده تن دیگر در شمال غرب چین مفقود گردیدند نظر به گزارش های چینی طوفان بخشهای های از مناطق کوهستانی کنسو را متأثیر کرده و سی و هزار نفر خسارمند شده و سی هزار دیگر به مناطق مسعون انتقال داده شده و چهل تن دیگر در اثر این حادیثه در شفاخانه بستری شدند. طوفان شبی پنجشنبه بر اعلامیه فروپاشی منازل هفتاد هزار جریب زمین زراعتی را نیز از بین برده است هند 23 جومادسانی مطابق 15 ایمه یک وزیر پیشین امور مخابراتی هند که با بزرگترین مورد فساد اداری در آن کشور متهم می باشد با زمانت نقدی از زندان رها شد راج در ماه فوریه سال گذشته زندانی شده بود و ای متهم می باشد که جواز شرکت های مخابراتی را با قیمت نازل به فروش رسانیده که تا چندی شرکت مورد علاقه اش منفعت ببرد گفته می شود که این قضیه 40 میلیارد عاید حکومت هند را کاهش داده است وزیر عدلیه هند که عضویت حزب سیاسی راج را رهایی او را تصمیم محکمه اینوان کرد. واشنگتن، نوزدهی جمادی سالی مطابق یازدهمای یک عسکری آمریکایی مکتوبی را از تالیم‌گاه حربی عسکری آمریکایی بنشررسان است در این مکتوب نوشته شده است که عسکری آمریکایی می‌گویند که جنگ ما با توریسم نیست بلکه جنگ ما عليه عالم اسلام است. لبنان شهر ترپوری اختلافات بین اهل تشیع و سنی رخ داد در این واقعه بشار الاسد گروه شیعه مذهبان را با تمام اکمالات دفاع می نماید در این حمرات چهار تن و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند لیبیا 22 جمادی سانی مطابق 14 می سازمان حقوق بشر ناتو را به علت بمباردمانه های اشان در هنگام اختلافات داخلی در آن کشور محکوم نموده است حقوق بشر خواهان به محاکمه کشاندن ناتو ولی ناتو گفته است که ما هیچ را در لیبیا مرتکب نشده ایم سومالیو 23 جمادی الثانی مطابق 15 می در آن کشور اولین بار ناتو بواسطه طیارهایشان مراکز رهزنان را مورد هدف قرار دادند تاکنون بیش از 200 تن از تاجران در نزد این رهزنان اسیرند بیت المقدس 23 جمادی الثانی مطابق 15 می زندانیان در آن کشور از هفتاد روز بدین سو دست به اعتصاب غذایی زدند مردم آن کشور گفتند در صورت وفات یکی از این زندانیان دست به مبارزه علیه حکومت خواهند زد ایران، 23 جمادیستانی متابق 15 می، حکومت ایران یک شخص زندانی را که یهودی بود اعدام کرد این شخص به علیت اینکه چند سال قبل یکی از فیزیکدانان کشور ایران را در بدل 120 زر دولار به قتل رسانده بود و کنون بدار آویخته شد المان، 24 جمادیستانی مطابق 16 می، پیش از کنفرانسی شیکاگو کرزای به آلمان سفر کرد. در این سفر با رئیس جمهوری آن کشور انگلا میرکل ملاقات نمود. در این ملاقات کرزای خواهان همکاری های دراز مدت به کشور افغانستان شد. پایان اخبار بها مترنما الله أكبر مقصدين هيا بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي هتكري اليهود وعرضنا داسوا كرامة مسجدي وتعرضوا لنبينا جمع النصارى الحاقدين شنو عزيز همين طور رسدين با پایان برنامه امروزي باشانیدان یک ترانه همه شما را به non مننان می سپاریم wa وليش يرب الخمرتي اه نيل في ساح اقصان الابي اه لنيل شهاده في ساح اقصان الابي زمجر. واطلب مسمعي رصاص رشاش أبي زمجر واطلب مسمعي رصاص رشاش ابي زمجر واطلب مسمعي رصاص رشاش ابي زمجر رثا الظمبا الظمبا